کی کیسود ماد جلد دوم فصل ثبوم چهار زواس اکنکار آن کس که قادر به زندگی به راه دل نمی باشد و در عوض حول قطب عقل می گردد بایستی بداند که تنها مفر و راه نجاتش مراقبه است مراقبه نیروی عجیبی عجیبیست است که لیتسی استاد معظم اک پیوسته در مراقبه از سوگماد طلب میکرد که انسانهای شایسته معنوی به تویش روانه شوند و خیلی زود کفانی که بعدها از مریدان و پارسایان او شدند شروع به ظهور نمودند مراقبه معنوی اک لایزالترین منبع قدرتی است که چلا در اختیار دارد این تکگاه حقیقی او بوده و جایی که عقل و استدلال و سایر راهکارهای مادی به خاموشی می به مدد او می آید. اگر چلا در محضر ماهانتا استاد حق در غیر حیات گلایه کند که مراقبه معنوی اک با طبع او جور نمی آید. به او توصیه می شود که همیشه و همیشه با کسانی که به مرتبت مهدیس واصل حلقه پنجم ناعلامده اند مصاحب و معاشر شود مهدیس دارای تجربیاتی حقیقی هستند ارتباط با ایشان به کلا کمک می تا معنویت خفصه خیش را بیدار سازد ایشان بزرگانی هستند که ذهن و آمال چلا را به سوی مبانی الهی سوق می دهند اینکه میل به زندگی معنوی را در انسان شعله بر می سازند بنابراین حلقه انجمن این گران پایگان از اهمیت شایان توجهی برخوردار است انسان فقط در جهانهای حقیقی شور و آسایش را در آغوش میکشد. اگر او آن را در جای دیگری بجوید در نهایت به دینجا رسد که در مسیر کل واقع شده و در چرخه آواگاوان چرخه آمدن و رفتن تولد و مرگ حلول و انتقال متور دور می‌زند تفکرات متافیزیکی همه بیمایه بوده و انسان را در این چرخ مخوف نگه می دارد. در زندگی دنیاوی همه چیز نسبی است حالان که در بسم جهانهای خدایی هیچ چیز در ارتباط با چیز دیگری معنا نمی آباد. مگر در ارتباس با اک اکیست می داند که بایستی طریق خداشناسی را در پیش بگیرد و در این راه هیچ مرجعی ای حتی تا استاد حق در قید حیات قادر به مساعدت او نیست مگر آنکه مطابق قوانین انسان حرکت و عمل نماید آنچه او نیاز دارد طرز نفسانیات شفقت خداگاهی و خرد است پس یا مسک نفس به معنای ریاضت کشیدن نیست بلکه اجتناب از زیاد و تسلط بر عواطف و احساسات می باشد شفقت متضمن عدم صدم زدن به دیگران و هنر مفید بودن و همچنین گذشت و همدردی در مقاطع حساس زندگی می باشد خداگاهی عبارت از زیر نظر گرفتن اعمال و انگیزه های خیشتن و نقد آنها می باشد اینکه به کناری نشسته و از مرتبه بالاتری نظارگر نفتانیات و تمایلاتش باشد افکاری که از ذهن صادر می شوند را مشاهده نماید و مطالعه دقیقی نسبت به اعمال کالبدی خود به جا آورد اعمالی همچون حرکت ازولات گردش خون تنفس و طایر مکانیزم ها این راهکاری به فرد کمک می کند که ماهیت توهمی نفس تحتانی را شناسایی نماید خرد به معنای حکمت غیر استدلالی است و به هنگام خاموش شدن ذهن طلوع می کند. آغاز آن با تمرینات بسیار ساده ای همچون کنترل دم و بازدم است که در بیشتر تمرینات معنوی اک داده می شود و نتیجه نائن آمدن به ذهن تک قطبی است البته واضح است که شفقت و خرد بر یک دیگر تأثیر میگذارند. دلتوزی در کنار خوب جلو کردن انسان در نظر هم نوعش نوعی رضایت خاطر به فرد می‌بخشد. توانایی‌های توانایی فکری، زمان، انرژی، منافع مادی همه در راه فرونشاندن آتش نفس متحد می شوند. با تحلیل رفتن نفس خرد رشد میکند و با طلوع خرد شفقت اوج میگیرد در حقیقت ایثار و از خودگذشتگی نمود مییآبد و دیگر تمیز بین خود و دیگران ابدا معنی ندارد گوهر خرد به تدریج در بستر تعادل ذهنی و عاطفی پای به عرصه میگذارد و منتج به تنویر حقیقی آگاهی یعنی اکشار می‌گردد هدف از زندگی انسان بر روی این سیاره آن است که سلسله تناسخات خود را خاتمه بخشد تناسخ جنبه آموزشی دارد ولی تا حدودی نیز دارای بچه تنبیه میباشد و روح بایستی آن را به دوش کشد و تا هنگامی که خلوص را در درون خود نیابد مجاز به بازگشت به نزد سودماد نخواهد بود. نیل به این مقصود مستلزم آن است که هرگز در زمین یا هر یک از سیارات کیهان فیزیکی مجددا تولد نیابد اشتیاق سوزان برای سرور ابدی و شکستن چرخه مرگ و تولد در زمین و از حبس در ماده سقیل می بایستی منظور نظر همه ساکنان جهان پیندا باشد طریعه این خلوص درونی این نفی مادیت و این انکار نفس از لحظه ورود روح به جهان آغاز می شود و همگام با رشد روح در تمامی مراتب وجود ادامه می آبند. اما فرد در وهله اول بایستی تمامی مسئولیت‌های حاصل از این موجودیت فعال را به بهترین نحو ادا نماید. همه باید بدانند که سوگ ماد هیچ کس را تنها به صرف عبادت یا کردار نیکو و یا رقت و عشق به دیگری به قلب خود جذب نمی‌کند. هیچ یک از این کیفیات از طبیعتی معنوی برخوردار نبوده. و روح را به پیشگاه سوگ ماد رهنمون نمیگردد. ولی ولیکن آنچه مناسب این طریقت است گسستن پیوندهای مادیت آن هم در عمل می باشد چرا که یک عمل مستقل ارزشی برتر از هزاران هزار فکر نیکو داشته و صعود روح را به جهانهای بهشتی تسهیل می کند اما در عین حال اگر دوچار مطلق گرایی شده و در مسیر خیش فقط متوسد انجام اعمال نیک باشد نیز شکست خواهد خورد رشد معنوی او منوط به ترک نیت مادی اعمال و پشت زدن به متاع می باشد هر عملی که به نیت ایثار سرزند حامی آفرینش است منظور عملی است که داوطلبانه و بدون چرجمدار انجام می گیرد در این گونه افعال فقط بدون توجه به منافع مادی حاصل از آن اقدام به عمل مینماید. مقصود از عمل فقط و فقط بایستی خدمت به دیگران باشد. هر آن کس که بیعملی را در عمل و عمل را در بیعملی ببیند، خردمند است. او در هماهنگی با اصول حقیقت دست به عمل می‌زند. چنین شخصی که از عوادت و نفع خیش در اعمالش چشم میپوشد پوشد خشنود خوشنود بوده و به هیچ کس جز ماهان تا استاد حق در قید حیات التجانه می کند تمامی عقایدش خردمندانه بوده و کل اعمالش حقیقتان از روی ایثار و حمت بلندش سر می زند زاد در کنه وجود خیش آرزوی دیرینه از برای مرگ دارد این بخشی از آگاهی کل می باشد که میل به خودکشی و نیاز به صدم زدن به دیگران را برمی انگیزاند. همان تمایلی که جنگ ها را می و با خشونت و تاراج ثروتها ها می موجب موجباس تحمل رنج و عقاب و مرگ را برخیشتن و همسایهاش فراهم میکند. فقط در های بخصوصی از حیوانات و برخی قبایل بدوی خودکشی جمعی گزارش شده است این راهکار نیروی کل برای خلاصی از تعلمات جسمانی می باشد ولیشه اصلی آرزوی مرگ است منع خودکشی از جانب اجتماع خطاست است. از ترجیح می دهند که به جای بحث راجع به خودکشی آن را انکار نمایند خانواده ها همیشه کشته شدن افراد بر اثر خودکشی را منکر شده و آن را به گونه ای دیگر می میکنند اعتیاد به مواد مخدر نیست که مایل به خیش انهدامی را در خود نهفته دارد تمامی بیماری ها و غمهای های آدمی در صورتی امتیام میابند که او موفق شود آگاهی خالصی را در خود به وجود آورد که عاری از کیدگی های نیروی کل باشد خودکشی گذاره اصلی زندگی در جهان مادی است آن محصول پافشاری انسان بر ادامه زندگی مادی خیش است این پدیده وابستگی ذهنی و آتفی به بار می آورد این وابستگی انگیزه اصلی خیش انهدامی در بشر است ضمن اینکه باعث رشد خصائص کل در او میگردد یکی از این صفات انات و کینه نسبت به زندگی و به طرع آن کنارگیری از زندگی میباشد آن کس که با محیط خود احساس بیگانگی میکند از خانواده و ارتباط خود کنار میکشد، همزمان با آن احساسی از گناه در مورد خیانت و اطرافیانش به وی دست میدهد. ابهام تنهایی و صدای نفسانی انسان در رابطه با میل به زندگی در انزوا و اشتغال به زهد و تقوا دستمایه اصلی خودکشی است و چه بسیار مردمی که زیستن مستقل از دیگران برایشان محال بوده و بنابراین یا می تابعه روابط اجتماعی خود باشند و یا محکوم به مرگ هستند و در هر دو صورت این به معنای وابستگی به حیات مادی است بین زندگی و مرگ همواره گسترهای زمانی به نام آینده وجود دارد خیش خلاق در انسان همان است که نیروی عک از طریق آن عمل می کند و خیش مخرب و انهدامگرد همان است که نیروهای کل از آن بحره میبرند عقصه تاخت و تاز این دو وجه همباره نهان است آوردگاه ناپیدای زندگی و مرگ فیزیکی معمولا در امغیترین لایه های وجود آدمی مخفی شده است ولی گاهان در اشکالی ضد و نقیز آشکار میگرده ترسط شکست تر یکی از صورتهای این تناقض است که حتی در امور پیش پا افتاده مثل ترس از ارتفاع نیز جلوگر است شکل دیگر آن شکست اجتماعی است که در آن شخص تمامی متعلقات مادی خیش را می و یا اینکه در ودبندی اجتماعی تنزل می کند. در فرهنگ شرق به این حالت بیاب می‌گویند. این کیفیات تهدیدکننده کننده بقا فرد است و در محور بقا در رتبه ای حتی پایین تر از مرگ قرار میگیرد در این گونه حراس ها انسان نادانسته خود را در مواجهه با تمایل به خیشن هدامی یابد. میلی که تا قبل از ظهورش از آن خبر بوده است از طرفی او از بیهوبیتی و پوچی می این بدان علت است که آن برزخت و خلع عظیم پوچی در نهاد اوست و با سقوط به درون آن به وضعیت بیچیزی قبل از تولد باز میگردد. او متوجه نیست که خودکشی یعنی رسیدن به همین حالت پوچی و بازگشت به آن برسه خوفناک خالیا و بیچیزی اما داوطلب مرگ معتقد است که معنای این انتحار آزادی از پوسته وابستگی این دنیای بیره بوده و پاسخی به خواسته ذهن خداگاه است که تمایل دارد تبدیل به ناظری خارج از مرکز شده و به کار نظاره این جهان مشغول گردد انسان پیوسته جویای دوری از جهان است ولی در همان حال نسبت به دور شدن از آن احساس غم و اندوه می نماید تمامی انسانهای ناراضی جهان با ملعبه خودکشی یا خیش انهدامی سرگرمند ایده او این است یا آرزوهایم جامعه عمل بپوشند یا مرگ را انتخاب میکنند اما اکثریت آنها نمیدانند که واقعا به دنبال چه چیزی هستند و یا حتی چگونه مردن را نمیدانند و چاره را در ساختن جهانی خیالی می‌بینند که در آن قدرت مطلق بوده و انتظار پایانی تحسین برانگیز از شجاعت و جسارت را برای خود در سر می‌پرورانند. در این سیاره فیزیکی که انگیزه های غریزی فرد به سوی ایدئال های قهرمانانه تشویق می‌شوند، انسان ناگزیر بایستی یا خود را نابود نماید. و یا دیگران را از میان بردارد او با درگیر شدن در آشوب این گونه تمایلات چیزی را در خودش نابود می کند شاید تصور شود که نفت اماره یا خیش حیوانیش را نابود ساخته این اینچونی نیست زیرا آنگاه که زندگی دوچار تلاتومات شدید می گردد انسان خیلی راحت به خیش بدویاش رو می کند. در این جنون بدوی او به عقاید پوسیده جادوگری بجعت می میکند و خواستش این است که به هر طریق ممکن مجددا با آفرینش وحدت حاصل نماید از دیدگاه او مرگ همانا وحدتی اسرارآمیز و معجزه آسا با چیزی است که کالود او را آفریده است او با هلاکت دیگران خواهان توسعه قدرتهای خیش درونیاش می باشد بارج ات به این تصورات بدوی او چیزی از خیش خالص را در خود نابود می‌کند. خرد خداگاهی و تمامی آنچه که اک به او نموده در این حالت از او فک می شود. این حراس پیر و قدیمی او را به وقتی نیستی خواهند رساند بدیهیست که او با نقض قوانین جهانهای معنوی خود باعث و بانی چنین ترسهای درونی و ناگهانی در خود می باشد عواملی که زیر ساختهای حیاتی او را فلج نموده و رنج ناکامی و مرگ را بر او دیکته می‌نمایند. در تمدنهای نیمه بدوی نیز احساسات وحشیانه و افراتی باعث هلاکت فرد می شود. درست به همان شکلی که ترس ناگهانی و شک فیزیکی باعث سکته و مرگ اشخاص می گردد. آرزوهای منکوب شده انسانهای زیادی را مبتلا به ناهنجاری های غیر قابل علاج می نماید. و این احتمال وجود دارد که حامل این گونه آشوبها از روی کچف خودش را بکشد او برای این منظور نیاز به آلاس و سلاح فیزیکی ندارد بلکه توسط مفروزات سست بنیاد و پوسیده خود را از میان برمیدارد. نتیجه اینکه که خودکشی از مصادیق انسانی است زیرا اختیار دخالت آگاهانه در تقدیر شخصی فقط به بشر تنفیذ شده است حیوانات بعضا از روی بی‌ارادگی و جبر تسلیم مرگ میشوند اما در وضعیت آگاهی آنها این صرفا نوعی عکسالعمل طبیعی نسبت به ترسهایشان است اما مفهوم مرگ و زندگی فقط در آگاهی انسانی حائز اهمیت میباشد گاهی اوقات در قبایل باستانی اشخاص مسن و کمبونیه به اراده خود دست به خودکشی میزنند تا صد راه جوانانی که بایستی نسل آنها را حفظ کنند نشوند اگر میار سنجش زندگی شعف باشد خودکشی در نقطه مقابل آن قرار میگیرد اکثریت قریب به اتفاق آدمیان پس از رسیدن به سن بلوغ دیگر زنده نیستند ایشان با توقف رشد و توسعه طبیعت معنوی نوعی خیشن هرامی پنهان را بر خود پذیرند آنها خود را در آداب و رسوم کهنه و مقبول اکثریت دفن نموده و آتش کنجکاوی ایشان در رحیافتهای تازه‌تر معنوی به خاموشی می و در حالتی منفعل از رضایت به سر می‌برند. قانون سودماد خیش انهدامی را در هیچ شکلی مجاز نمی شمارد انگامی که فرد برای گریز از مسائب زندگی دست به خودکشی می‌زند، آن در کالودی جدید حلول می نماید. تا با کارمایی که در زندگی قبلی از رویارویی با آن امتناع کرده است مواجه شود. آرزه خودکشی مختصه آگاهی انسانی بنابراین تیف از این طیف وسیعی از اعتراضات و واکنش‌ها را برمیانگیزد. منظریان از خودرازی و مربیان قوانین دوگم تحمل کاستی و ضعف را ندارند. ایشان شبیه‌ن خیش تخریبی را که در آداب پیر و تکراری آنها پناه گرفته است، انکار می‌نمایند. اتوماتیک بودن مکانیزم خیشن هدامی و روند بی انقطاع حیات اختیار و خلاقیت انسان را زیر سؤال میبرد این مردمان تبدیل به موجوداتی فاقد اختیار شده و اختلالات روانی خود را در حوزه اجتماعی ایدارهای انسانی محق جلبه میدهند بدین وسیله آرمان پنهان و معیوز کننده خودکشی را منکر شوند این همان چیزی است که آنها را وادار به استمرار مقاومت در برابر تغییرات می نماید. خودکشی یک بیماری واگیردار در سطح جامعه و خانواده هاست. چرا که باعث فعال شدن این ویروس خفته در سایرین می شود. وقتی شخصی خیال خودکشی دارد، معمولاً آن را انجام نمی دهد. بلکه از آن به عنوان دستاویزی برای ادامه خط مشی خود استفاده می کند. ملامت مردم و داغ انگی که جامعه به خانواده ای که در آن خودکشی صورت گرفته وادار می سازد انتقامجویانه دارد. حتی کودکان هم قالاً خانواده یا والدین خود را با این نوع خودکشی انتقام تنبیه می کند. بسیاری از انسانهای ناامی دوست دارند که ناکامی‌های خود را در جهت تحریک و جلب توجه و ترخم دیگران و همچنین تغذیه آمال خود به کار گیرند آن روندی متناقض را در ارتباط آنان با مخاطبین ایجاد می کند. آنان در صددند تا عشق و محبتی را که حق مسلم خود می‌دانند از دیگران دریافت نمایند و با یک تنبیه، ترد شدگی و رفتار متاسبانه از طرف اعضای خانواده یا افراد جامعه ترقیب به خودکشی می شوند این توزی و خشم هرچند ابزار دفاعی هستند اما در چنین حالاتی می بسیار مسموم و خطرناک باشند هیچ استاد حقی ظهور به دیگران را برای خودش یک اعتبار به حساب نمی آورد. این تواضع است و نه باعث احساس سرکوب نمودن چیزی در عالم درون می می‌گردد. بلکه این آزادی را برای افراد قائل می شود تا خودشان تصمیم بگیرند که آیا چون این تجربه ای با خود استاد بود است یا خیر. او میل دارد که آنها خود نتیجه گیری کنند که این حضور واقعیت بوده است یا توهم و به همین ترتیب از حضورش در آتما سروپ چیزی به آنها بروز نداده و تلاشی هم برای جلو توجه آنها نمی کند اما این انتظار را دارد که ایشان مستقل از حواس و ذهن در مورد حقیقی بودن تجربه ایشان تصمیم گیری نمایند اگر کسی شخصاً ذهنش را با این ایده مجاب کند که استاد حق در قید حیات واقعاً بر او ظاهر شده است در نتیجه آن را باور کرده و به هیچ وجه از آن جدا نمی شود اما اگر مجبورش کنند که او را استاد حق در قید حیات بشه پس از مدتی شک و تردید به سراغ او میآید که نکند چون این تصویری کار یک عامل بیرونی بوده علت نمودهایش بالکل جعلی بودند این فهمی سطحی است از ارکان درونی او جاری نشده است بایستی این مسئله را به خاطر بسپارد که ماهانتا استاد حق در غیر حیات وظیفه ندارد که همیشه تجربیات درونی او را تأیید و یا تکذیب کند اما بایستی ایمان داشته باشد که ملاقات با او فراتر از چیزی است که او می تواند در زندگی تجربه اش کند و این با او می ماند اگر غیر از این باشد تجربه به تدریج تقدس خود را از دست داده، و تجربه گر فراموشش می کند یکی از ذرائف در این رابطه آن است که تأیید درونی همزمان با خود تجربه بر فرد قالب می شود در اکثر موارد او از استاد تقاضای رفع نیازهای بیرونی را خواهان است مثلا یک شفا یا هدیه الهی را البته این حاجات نیز در صورت رعایت اصل مذکور برآورده خواهند شد اما بعضها او این را فراموش کرده و به استاد پشت می نماید زیرا شخص دیگری که ادعای نیروهای اسراری را دارد از راه رسیده به محض آرزو و نیازش نیت او را برآورده میسازد چهار زواس اکنکار در مورد محدیس واصل حلقه پنجم عبارتند از یک محدیس از الکل، توتون مواد مخدر قمار و حتی پرخوری دوری میجوید مهدیس هرگز در مرتبه حیوانی به سر نمیبرد. او یک هدایتگر است و وایستی توجه خیش را فراتر از خصائص حیوانی متمرکز سازد دوم مهدیس هیچگاه با زبان قرورانیز سریبکارانه خشمگین و منتقدانه در مورد اعمال دیگران صحبت نمی کند دیگران را به خاطر اعمال نادرستشان مقصر ندانسته و از ایشان گله و شکایت نمی کند. و با آنها وارد مشاجره یا عذیت و آزار نمی گردن. او پیوسته نسبت به هم نوعانش نهایت احترام، ادب و نزاکت را به جا می آبرد. و همیشه شفقت و شادمانی را از خود بروز می دهد. سوم مهدیس نهایت ظرفیت خضوع و خشوع و عشق را داراست از غیر تمامی مسلک و آین ها آزاد می باشد. او از قانون کارمان که او را به دام خود ستایی و تکبر می اندازد مبرامی باشد او اشقی عظیم از بحر تمامی انسانها و جمله مخلوقات سودماد را در سینه دارد چهارم مهدیس بایستی در تمامی اوقات پیام عک را تردیج نماید و به جهانیان نشان دهد که الگوی خلوص و شعف است او بایستی ثابت نماید که رهروی در کالود انسانی نیازمند استادی در کالبد انسانی می باشد این قانون تغییر ناپذیر سوزماد است در زمان رهلت او اساتید اک وظایف او را به استاد حق دیگری محول میکنند که دارای کالبد فیزیکی است و او تا زمان انتقال به جهانهای دیگر عهدهدار مسئولیت های محوله خواهد بود اساتیدی که از طبقه فیزیکی می می‌کنند پس از مرگ و انتقال چلاها به جهانهای بالاتر آموزش‌های خود را با چلاهایی ادامه می‌دهند که در زمین به آنها وصل دادند استادشان با ایشان ملاقات کرده و آنها آموزش‌های بعدی را تحت نظر او در جهان‌های خدایی از سر می‌گیرند اینها چهار قانون برای مهدیس ها واسلین حلقه پنجم می باشد آنها به عهد و پیمان خود وفادار بوده و احترامی عمیق برای مهان قائل هستند هر یک از این قوانین در کنه خود از اقتدار و قدرتی عظیم برخوردار است اشاعه آموزش های اکنکار و سگی اکید به مهدیس ها دارد پرداختن به آن هم صرفا از سر خوشزوغی و با هدف یافتن هیجانات جدید و یا کسب قدرت های روانی است که پیامد آن پوچی، اختلالات عصبی و شاید هم بستر از اینها باشد هیچ کس نبایستی وصل به اطرار با بی ارزش طالب باشد زیرا مطمئنن نتیجهش فاجعه ای از این خواهد بود همچنین دعا کردن برای شخصی دیگر یا استفاده از هر نوع شفا نظیر قرار دادن او در نور سپید قدرت های تحتانی را به هستی دعوت می کند. اگر فردی برای ماهانتا یا هر یک از اساتید خواه برای خودشان و خواه برای آن که برایش کاری انجام دهند دعا نماید دریافت کنندگان این دعاها و استعانا برای اجابت او ناگزیرند که تا حد سطوح روانی پایین بیایند دعا و شفا به هر طریقی به جز یک مختص جهانهای روانی است اینگونه درخواستها و شفاها قوام و دوامی ندارد اساتید اک هیچگاه این را تایید نمی کنند که هر درخواستی از جانب چلا بدون پرداخت بهایش بلفور اجابت می شود. استاد حق در قید حیات جانسته هایش را به شرطی به چلا عرض می نماید که چلا آنها را به دیگران نیز احدا نماید اک نیازی به ذهن موش کافانه فلسفی و منطق استدلال ندارد برای چلای اک لزومی ندارد که ساعتها در مورد یک صفحه یا از یک کتاب به تعمق بنشیند تا منظور نویسنده را درک نماید اکیست به یک از این مقولات احتیاج ندارد حقیقت خدا برخلاف پیچیدگی ها و کنکاش در اصول غیرقابل فهم بسیار ساده و بیپیرایه است ذهن مشکلات را خلق کرده و سپس خودش آنها را بغرنج فرض نموده و سر آخر تلاش می آنها را حل نماید حقیقت همیشه خود را با سادگی غریبی توصیف می کند چلای اک بایستی چهار اصر را در ذهن و قلب خیش حک نماید نخست، تنها یک خدا وجود دارد که حقیقت آن سودماد است دوم ماهانتا استاد حق در قید حیات آور سوگماد در تمامی جهانهای مادی، روانی و معنوی است سوم، وفاداران آنان که از تعالیم اک مطابقت می تمامی برکات و گنجینه‌های اقلیم بهشتی را دریافت می‌دارند. و چهارم روم، شریعتی سوگماد کتاب مقدس پیروان اکنکار است و هیچ مأخذی برتر از آن وجود ندارد بنابراین معنویت قابل آموزش نیست بلکه بایستی درک شود همین که شخص در تیه رهرویش اصرار اکراز از می آموزد و با کسب انگیزه زندگی از او احیا می شود دیگر ضرورتی ندارد که در میت فیزیکی با او به سر برد چلا در همه جا از مشایعت درونی او برخوردار خواهد بود و قادر است به کررات با او ملاقات کرده و هرگاه فرصتی ایجاب نماید رشد معنوی خود را گزارش دهد با حضور در کلاس های سنگ اک شخص قادر به برقراری تماس با ماهانتا استاد حق در قید حیات میگردد ست به معنای حقیقی یا غیر قابل تغییر و سنگ به معنای وحدت می باشد این وحدت با آنچه که خالص و فنا ناپذیر باشد ست یا اجتماع ست سنگ اک می باشد در طبقه مادی ست معنای اثبات انسان و استاد حق در قید حیات را نیز می دهد در غیاب استاد حق در قید حیات مطالعه نوشتجات اکنیز ست سنگ نامیده می شود. زیرا آن هم انگیزه ای برای سفر به درون کشف طبقات بالاتر را به فرد میبخشد. خواندن متون اکنکار ست سنگ است مصاحبت با استاد حق در قید حیات و یا یکی از وافلین بالاتر نیز ست بوده و همچنین شنیدن و خواندن دیسکورس های استاد حق و یا سید درون و اتصال با جریان صوتی نیز سد می میباشد به طور کلی هر نوع پیوندی با استاد حق در قید حیات سد سنگ است تسلیس یکنکار عبارت است از اپوستات گورو ماهانتا استاد حق در قید حیات دوم سد یا مصاحبت استاد با پیروان خود از دوم اک کلام حقیقی یا بنی که جریان صوتی حیات است از این رو مادامی که جذبه توسعه آگاهی معنوی جهت رسیدن به خداشناسی در وجود شخص میجوشد نبایستی جریانش را قطع کند. مهمترین حقیقتی که پیشنزباسی این تعالیم معنوی را متمایز می‌سازد شناخت سودماد است که شامل اول خودشناسی دوم خداشناسی و سوم ورود به اقلیم بهشتی یا در این زندگی و یا در زندگی بعدی است تمامی این گفته ها مبین آن است که چلا به تعلیماتی بجز اکنکار ارجا نمی شود آن طریق معرفت و ورود به ساحت بهشتی در حین زندگی در کالبد انسانی است این نهایت هدف همه چلاخا است که در زندگی فیزیکی طریق را در پیش می‌گیرند نه اینکه صرفاً از بند کارما یابند و نه اینکه های بالاتر دریافت کنند بلکه هدف برتر معرفت بهشت حقیقی در حین زندگی در کالبد گوشت خون میباشد این چکیده تمامی تعالیم اک میباشد مفهوم پروردگار متعال متفاوت از معنایش در نزد ادیان اصولی است هزم این مفهوم مذهبی برای اکثر مردم بسی سادهتر است اما حقیقت آن است که ایشان آنچنان در آداب و سنن مذهبی خود غرقه شدهاند که صد راه ورود مفاهیم تازه شخصی و جمعی در مورد خدایی میشوند که بر آنها حس میراند. راند اکنکار هرگز قصد در همشکستن تطاویر این دست از انسانها را ندارد چون این کاری آنها را از حاشیه امن معنیتشان محروم می سازد. زیرا ایمانشان به مقام متعالی است که در صورت دعا ایشان را در زندگی درونی و روزانه شاید از سر مورد رحمت و عفو قرار دهد بیشتر مذاهب همباره معتقد به خدایی لا بودند این خدا کسی بود که امکان قرار دادن یک موقعیت حضور جغرافیایی برایش میسر نبود و بنابراین انسان این مقام را برایش متصور شد که در همه جا و در همه چیز حاضر است این مسئله روحانیت را به سوی این تفکر سوق داد که خدای لامکان هم در درون و هم در بیرون حضور دارد اما این فقط یک پندار ذهنی بود زمانی که انسان با بحرانهای سهمگینی مواجه می شود که راه حل‌های مادی را ایجاب میکند فرو می ریزد. تازه این در صورتی است که مشکل در حیطه جهانهای ذهن و ماده باشد او به زودی در میابد که هرچقدر این خداوند دست نیافتنی را فرا به تقاضایش پاسخی داده نمی شود و معضلاتش مرتفع نمی این به خاطر آن است که تصویری دوگانه از خداوند تصویم نموده است اکیست میاموزد که هیچ کس نمی تواند به دین طریق به خدا خدمت کند او بایستی این تصویر دوگانه را در رابطه با سوگماد به فراموشی سپارد سوگماد اراده و محشیت خیش را به طریق مذهبیون به اجرا نمی گذارد کردار و مقدرات آن دارای کیفیتی ابدی و کاملا غیرشخصی است در جهانهای پایین آن کل را مأمور جاری نمودن مشیتش می نماید و به دینستان امور تمامی ارواح فردی را سراسامان می بشرد. یعنی به هنگام درخواستهای شخصی و زمانی که فرد او را جهت آسایش و تسکین آلام بیماریها و رهایی از امور دنیوی فرا میخواند هرگز دری به رویش گشوده نمی شود اگر هم های شخص به دین صورت مورد اجابت قرار گیرد به خاطر آن است که کل نوعی تسکین موقت را به دلائلی برایش قائل شده است اگر آدمی چنین تصور کند که با تسلط بر قدرت‌های ذهنی می‌تواند های مادی خیش را توسعه دهد، زمان و نیروی حیات خود را تلف کرده است. وعده تسلط بر ذهن و کنترل آن دروغ و فریبی بیش نیست. چنین ایدئولوژی و اعمالی غالباً فرد را به اختلال شخصیت دوچار می‌نماید. و در نتیجه مستعد قربانی شدن توسط حملات روانی می‌گردد. تعالیم متافیزیکی بدون سازماندهی و مراقبت های منظم و مستمر، محصولی به جز سردرگمی برای فرد در نخواهد داشت. در اکثر آموزش‌های روانی و متافیزیکی، و چه مذهبی یا پرستش پروردگار متعال، نقش میگردد و تعالیم آنها صرفا تبدیل به وسائطی برای تسلط به ذهن دیگران و منفعت شخصی میگردد که کاریست اهریمنی و بیتمر هیپنوتیسم بدترین شعبه روانی است زیرا به عناوین مختلف توسط کاربرانی که مردان و زنان را افسون می‌کنند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد کاربر افکار آنها را تحت تأثیر قرار داده آرزوها و تمناهای درونی آنها را در کنترل خیش در و خود را استاد و گرهگشای تمامی موقعیت و مشکلات آنها جلوه می‌دهد. زندگی مملو از نهایت جازبه ها و کشش ها برای برای است که اسرار تأثیرات هیبنوطیک را در سرنگشت خود دارند و اینگونه تمایلات در مورد آنهایی هم که در صدد گسترش نیروی جاذبه خود بر روی دیگران هستند نیز صدق می کند. گفته می شود که به مدد هیبنوتیزم فرد هر زمان که اراده کند به خواب می و با استفاده از آن شفا گرفته و رنج‌هایش تخفیف می آبند. اما از آن چه که توسط نااهلان به سوی دیگران نشانه میرود کمتر صحبت می شود. اگر هیبنوتیزور مقاصد تخریبگرایانه گرایانه، میل به انتقام یا عشق به قدرت را در خود تشویق کرده باشد، می تواند انگیزه سرقت و جنایت را در قربانیش برانگیزد. روش هایی هم که در آنها بیمار با هیپنوتیزم به زندگی های گدشاش برده می شود نیز بیبونیان است. در اکثر مواقع یک موجود غیر ارگانیک یا انتیتی، در تجربه شخص هیپنوتیزم شده شرکت نموده و او را با عقایدی غلط آشنا می‌سازد. آن وجود شرور تناسخاتی جعلی را بدون هیچ مدرک و گواهی بر او آشکار می‌سازد. در این گونه موارد است که چلا بایستی مرز تجربه روانی و, و سیناسیون ذهنی را از یکدیگر تشخیص دهد. چلا بایستی مطمئن باشد که شخصی که چنین تجربیاتی را بازگو می‌کند هرگز متوجه جعل اقده ها و سلسله آرزوهایش یا توسط آن وجود اسیری نشده است مرز تشخیص مرضی بین حالات حیجان زیاد جنون و حملات روانی بی نهایت ظریف و پنهان است به همین دلیل در طول ماجرا واقعا مشخص نیست که آیا یکی از این کیفیات یا همه آنها حضور دارند حملات شدید روانی موجب اختلال ذهن شده و قربانیش را بر روی تجاوز موجودات احسیری می عامل آمل حملاتی اینچونین و ضد فرد ترس می باشد چنین چون این ترسی از یک تجربه ترخ نشعت گرفته است سرگردانی در کلاف هزار گره ذهن مسیری غیر حقیقی است که هیچگاه به مقصدی نمی رسد اما مادامی که فرد را وادار می کنند که با ترسهای پنهانش مواجه کردد به او ثابت می شود که مسیر حقیقی او وصل به دانش معنوی و طریق والای خدایی است رودر با ترسهای پنهان یکی از طرق افزایش آسانه تحمل انسان می باشد مشکل آن مسیر غیر حقیقی این است که در جنبه‌ها و ابعاد مختلف خود از روندی غیر ارادی و فاقد اختیار پیروی کند امروزه حجم عمده ای از علوم روانی در دسترس همگان قرار گرفته است. ولیکن حجم زیادی از آن همچنان برای جهان درونی ما ناشناخته است. از خیلی خوب است که چرا اک همیشه از نیروهایی که اهریمنان بر علیه سایرین استفاده میکنند آگاه باشد اگر انسان به جهان پیرامون خود نظر کند مسلما پی میبرد که بایستی چارچوبی نافذ تعدیل کننده پیچیدگی های عدیده او باشد با این حال چنانچه در عین سادگی دست به کار شود با آزمایش پدیده های زنده حیات معالن در میابد که این نظم مقدر اجزای وجودش بر اساس پیکره ای دقیق بنا نهاده شده است علم جستجوی ای را در مورد منشأ ارگانیسم انسانی آغاز کرده است اما این مطلوب هیچ هیچگاه در طبقه فیزیکی یافت نخواهد شد زیرا اصلا کیفیتی فیزیکی نیست آن مربوط به خواص ذاتی اتم‌هایی که باعث آرایش یافتن خود در الگوهای پیچیده قماش هستی می‌شوند هم نیست نیروهای گرداننده کیهان پیکره‌ای است که در تمامی های حسی دخیل بوده و متعلق به فاز دیگری از تجلی بجز کیهان فیزیکی است. آن دارای ابعاد دیگری است. ابعادی که انسان ندانسته به آنها خو گرفته است و بر حسب عادت توسط ارکان دیگر آگاهی که جدا از حواس انسانی میباشند فهم شود و شاید در قلب نیروهایی نامرئی زیست می نیروهایی که فقط تأثیراتشان قابل درک است او از میان اشکالی نامرئی حرکت می که اعمال و کردارشان را به ندرت دریافت کرده یا اصلا در نمی برخی هم ممکن است با انتصاب خود به آنها احساس خودبرتعبینی نمایند در این بخش ذهنی چرخ گردون که بر حواس انسان نامرئی و برای افزار بینایی و ادراکش نامحسوسند چه بسیار بقایه ای روخ می دهند که هیچ انعکاسی بر روی طبقه فیزیکی ندارند و چه وجودها که در این بعد نامرئی همچون ماهیان در آب دریا زندگی می کنند برخی دارای ذهنی تیز و فعال بوده و برخی دارای ظرفیت‌های ویژه معنوی می‌باشند که بد امکان می‌دهد که از این مرز ظریف گذر کرده و همچون قباسانی که به بستر اقیانوس میروند وارد بعد محسوسات گردند. زمانهایی کیهانی وجود دارند که در خلال آنها هر از گاهی پائل‌ها فرو ریخته و این نیروهای نامرئی به سوی آدمیان فرازید می‌شوند. و زندگی آنها را به تباهی می کشند طبیعتاً چون این پدیده هایی در مورد کسی که اطلاعی در مورد آنها ندارد صدق نمی کند زیرا جهلش جلودار او بوده و این نیروهای نامرئی گزندی به او نمی رسانند. چهار نوع از شرایط وجود دارد که در آنها حجاب، بر افتاده و فرد نادیدنی ها را می بینند. اولان که شخص در مکانی حضور یابد که این نیروها متمرکز شدهاند. دوم ممکن است با کسانی که دستند در کار هدایت این نیروها هستند برخورد نماید. سوم اینکه خودش برای تجربه نیروهای روانی اقدام نماید که البته علاقه اش او را به سوی این کار راهبری می کند او در مواجهه با این نیروها نمیتواند بفهمد که کجاست و قادر به خروج از زمیر ناخداگاه ذهن آشفتر نبوده و نهایت قربانی شرایط مخربی که این هجاب را دریدهاند اند میگردد چهارمین و متدابل ترین حمله روانی بدین صورت است که از طریق اصحان ناآگاه و کینجوی دیگران سر میزند همه حملات به امد و با طرح و نقشه قبلی انجام نمیگیرد حتی ممکن است شخص بدون آنکه خودش بداند قربانی یک حمله روانی گردد بنابراین نبایست خودش را در سطح آگاهی متجاوز قرار دهد بلکه بایستی به روشهای انسانیتر اک اتکا نماید که در عمل موثرتر بوده و خطرات کمتری را خواهند داشت برخی از طریق تأثیرات مکانی دوچار تجاوزات روانی می گردند کسانی که اصلا روانبینی بینی اما حواس ایشان نسبت به این نیروها بی حساس می باشد. ممکن است شخص در حالتی نیمه آگاه وارد مکانی شود که این نیروها با فشار شدیدی متمرکز شدند اگر شخص دارای اعتاش ذهنی بالایی باشد به طور مبهم از وجود چیزی که میخواهد جذبش نماید و او را از درون متلاطم ساخته، آگاه میگردد. در بعضی از افراد مرز میان آگاهی انسانی و روان بسیار متراکم و پرلایه است و آنها هیچگاه از وجود چنین هایی در پیرامون خود باخبر نمیشوند. آنها فقط احساس افسردگی و فشار مینمایند که با ترک آن مکان رفع گردند ولی امکان اینکه این کیفیات هیچگاه شناسایی نشوند ولی سالها بیماری های جسمی و بدبختی و نکبت را بر او تحمیل نمایند وجود دارد به همین خاطر کسی که به دنبال قابلیت های روانی همچون حالبینی تنظیم حاله و همچنین مطالعه متون روانی به عوض هیچ گونه دستاوردی کسب نمی کند. مدرس یا خواننده این متون یا کسانی که چون این تنظیماتی را انجام میدهند سارقین انرژی بوده و به راحتی کنترل فرد را به دست میگیرند احساس ترس و افسردگی بارسترین آثار یک حمله درونی است و به یکی از طرق مذکور روی میدهد این اتفاقی نادر است که حمله کننده هویت خیش را بیدلیل فاش سازد شخص خود بستر لازم برای حمله روانی به سوی خیش را آماده کرده است و پس از درگیر شدن در محلکه این نامرئی ارکان ذهنی و جسمانیش از حالت طبیعی خارج می شوند و به عبارتی دوچار عدم تعادل می شوند یک حمله روانی غریب الوقوع حد از اینکه که بر فرد ظاهر شود پیشاپیش سایه خود را بر آداهی او می افکند. تحلیل رفتگی عصبی و اختلالات ذهنی از نشانه های اصلی حملات اسیدی در میان مردم است. بوی نامطوب بو و کوفتگی مفرط پس از حمله روانی و در طول خواب و کال بعد مستولی می شوند. اینها شامل غیرواثرین می شود. یک اک اکونین پدیده ها و عوارضی را هرگز تجربه نمی کند. او در برابر این گونه مسئولیت دارد چرا که دیر یا زود می آموزد که از منظر کلیت هستی بشر در وضعیت آگاهی انسانی وجودی بی و کامل نمی باشد آن سیرت او را تا حدی سعود می دهد و سپس رهایش میکند تا با استکاب تلاش فردی و بالغوبه هایش ما بقیه قوس سعودش را به تنهایی بپیماید. یا در طی زندگیش روند مرگ را می شکند و یا اینکه سیر قهقرایی را در پیش میگیرد و توانایی هایش را نیز از دست می دهد در اینجا تحول انسان به معنای گسترش کیفیات و جهان درونی است کیفیاتی که معمولا راکت مانده و به خودی خود پیشرفتی نمی کند تجربه ثابت کرده است که چنین گسترشی فقط در شرایط معینی امکان پذیر است آن فقط در تایه جد و جهد در چارچوب تربیتی منظم و مستمر توسط شخص و همچنین با انایت و دستگیری کسانی که قبلاً بدان مبادرت وزیده و به درجه معینی از رشد و توسعه دست آفدهند و تا حدودی دانش این طریق را آموستند امکان است پشت معنوی در پناه پشتکار فردی و با مساعدت ماهانتا استاد حق در قید حیات حاصل می کردن. از این پس چرا بایستی درک کند که در راه پیشرفت خود تبدیل به وجودی متفاوت خواهد شد و واجب است که بیاموزد و فهم نماید که در چه نوع از آگاهی و در چه جهتی بایستی یک وجود متفاوت باشد یعنی درک کند که واقعا بیش از آن است که میاندیشد. و اینکه شرارهای از آگاهی معنوی میباشد همگان قادر به پیشرفت معنوی و تکامل نمیباشند زیرا اکثرا آن را از جان و دین نمیخواهند اقلیتی در پی خداشناسی هستند و اکثریت به دنبال توسعه روانی خود می روند این بدان خاطر است که آنها دانشی نسبت به آن ندارند و بدون یک دوره آماده سازی طولانی قادر به درک آن نخواهند بود حتی اگر با آنها تذکر هم داده شود باز هم از درک آن عاجزند در اصل برای متفاوت شدن در آگاهی معنوی شخص بایستی با شدت و طی مدت‌های مدید خواستار آن باشد یک تمنای مادی یا آرزویی بیپایه که بر اساس عدم رضایت از شرایط زندگی بیرونی سادن می شود هرگز اشتیاقی را برای قرار گرفتن در زمره کتانی که به خداشناسی رسیده اند نمی افروزد رشد معنوی انسان تماما به میزان درک او از اینکه چه چیز به دست می آورد و چه چیزی بایستی به خاطرش بپردازد، بستگی دارد اگر آن را نطلبد و چنانچه باشور و حرارت خواهانش نباشد و یا سعی و استقامت لازم را برایش خرج نکند هرگز گشایشی برایش حاصل نخواهد شد از طرفی هم نهایت بی انصافی است که او جبران به سوی چیزی رانده شود که آن را دوست نمی دارد حقیقت آن است که تا پیش از شکوفایی هر رکن وجودی یا های درونی از آن بیخبر است بایستی در مورد بلغوه ها و قدرت هایی که هرگز از آنها استفاده نکرده مطالعه نماید و آموزش ببیند این حلقه گم شده و مهمترین نکته در رشد معنوی انسان است این همان ترجیه بند معروفی است که همواره تکرار می شود انسان خودش را نمی شناسد. این معمای وجود انسان است